عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. زمین بررسی کتاب مقدس به کتاب انبیا رسیدیم. در درس امروز مطالعه هزقیال نبی و رویای وادیه استخانهای خوش او رو ادامه خواهیم داد. بیاد گوش کنیم ببینیم خدا امروز میخواد به ما از پیام هزقیال چی بگه. با هم به درس امروز معلممون گوش میکنیم. دست خداوند بر من فرود آمده مرا در روح خداوند بیرون برد و در همواری قرار داد و آن از استخانها پر بود. و مرا به هر طرف آنها گردانید و اینک آنها بر روی همواری بی نهایت زیاده و بسیار خشک بود. و او مرا گفت ای پسر انسان آیا می شود که این استخانها زنده گردد؟ گفتم ای خداوند یهوه تو میدانی پس مرا فرمود بر این استخانها نبوت نموده به اینها بگو ای استخوان‌های خشک کلام خداوند را بشنوید خداوند یهوه به این استخوان‌ها چنین می‌گوید اینک من روح به شما در می‌آورم تا زنده شوید و پیها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد و, و شما را به پوست خواهم پوشانید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شوید پس خواهید دانست که من یهوه هستم پس من چنان که مأمور شدم نبوت کردم و چون نبوت نمودم آوازی مسموع گردید و اینک تزلزلی واقع شد و استخانها به یکدیگر یعنی هر استخانی به استخوانش نزدیک شد و نگریستم و اینک پیها و گوشت به آنها برآمد و پوست آنها را از بالا پوشانید. اما در آنها روح نبود. پس او مرا گفت بر روح نبوت نما ای پسر انسان بر روح نبوت کرده بگو خداوند یهوه و چونین میفرماید که ای روح. از بادهای اربع بیا و به این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوند. پس چنان که مرا امر فرمود نبوت نمودم و روح به آنها داخل شد و آنها زنده گشته بر پایهای خود لشکر بینهایت عظیمی استادن. و او مرا گفت ای پسر انسان این استخانها تمامی خاندان اسرائیل می باشن. اینک ایشان میگویند استخوان استخانهای ما خشک شد و امید ما زایه گردید و خودمان منقطه گشتیم. لحاظا نبوت کرده به ایشان بگو خداوند یهوه چنین میفرماید. اینک من قبرهای شما را می و شما را ای قوم من از قبرهای شما درآورده به زمین اسرائیل خواهم آورد. و ای قوم من چون قبرهای شما را بگشایم و شما را از قبرهای شما بیرون آورم آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم. آیاتی که خوندیم موعزه هزغیال سومین نبی بزرگ است. من عنوان کتاب حزقیال رو همه چیز عجیب و باور نکردنی هست انتخاب کردم این عنوان خوبی برای این نبی عجیب هست که نبوت‌های عجیب و خارق ای رو در موعظه‌هاش به ما نشون میده این موعظه حزقیال بیش از بقیه مورد علاقه من هست موعظه‌ای که مربوط به استخوان‌های خشک است حالا اهمیت موعظه وادی استخوان‌های خشک در چی هست حزقیال به یک دره پر از استخوان‌های خشک برده شده مأموریت حزقیال از طرف خدا اینه که برای این استخوان‌های خشک موعظه کنه. حالا میفهمم که چرا وقتی بیلی گراهام دانشجو بود و فن موعظه رو تحصیل می کرد، او در مردابی برای تمساها موعظه کرد. من شنیدم که واعظین روستایی برای گاوها و دیگر حیوانات در استبل استابل می می‌کنند. اما فکر می کنم که چالش حزقیال عظیمتر از این هاست. موعظه کردن برای استخوان‌های خشک که یک دره رو پر کردن. استخانهای زیادی اونجا بودند و کاملا خشک شده بودند. به لحاظ تمثیلی این حسیه که گاهی بعضی از شبانها وقتی پشت سکوی خطاب به جماعتشون نگاه میکنن بهشون دست میده. اونها شاید لباسهای گران قیمتی پوشیده باشند، شاید خیلی فیلسوف به نظر برسند و شاید ظاهرشون خوب باشه. اما به لحاظ روحانی شبان با این چالش مواجهه که آیا میشه این استخوانهای خشک زنده بشن؟ آیا میشه اون طوری تاریمای کنه که با پیغامش حیات روحانی رو به زندگی این افراد وارد کنه یادتون باشه که هزقل نه تنها یکی از انبیای بزرگ هست، بلکه یکی از نبیهای اسیر هم هست. ارمیا زمانی مای میکرد کرد که بابلی ها در حال فتح اورشلیم بودن. سقوط اورشلیم 20 سال طول کشید. بردن قوم خدا به بابل در طی یک دوره 20 ساله انجام گرفت. در تمام مدتی که این واقعیت اتفاق میافتاد ارمیا در اورشلیم مای می در آغاز اون اسارت دانیال وقتی چهارده سالش بود به عنوان اسیر به بابل برده شد. نه سال بعد هزقیال در سن 25 سالگی به اسارت رفت. در جلسه بعدی خواهیم دید که دانیال خدمت موجزاسای خارقلادهی در قصر نبوکت نصر داشت که مهمترین بنای دنیا در اون دوره بود. دانیال خدمت منحصر به فردی در دربار نبوکت نصر و پادشاه بعد از او پسرش بلچسر داشت. بعد از اون دانیال داریوش پادشاه مادی رو خدمت کرد و بعد در حکومت کروش کبیر بعد از اینکه که پارسیان بر بابل غلبه کردن خدمت می کرد. خدمت دانیال در حضور پادشاهان در قصر بود. خدمت هزقیال بسیار مشکلتر از او بود. او فرا شد که به دوستان تبعیدیش در بابل خدمت کنه. هزقیال در کمخای اسرا خدمت می کرد همونطور که ایمانداران وفادار با شجاعت در اردوگاه اسرا در, در کتاب سول با نام اردوگاه اوسرا در مجموع جزایت شرح داستان شبان فداکاری رو میخونید که در اردوگاه اوسرا در سیبری زندانی بوده و به هم بندی هاش خدمت میکرده. هزقیال هم در چنین شرایطی فراخوانده شد که نبی باشه. چالشی که هزقیال با اون مواجه بود این بود که قوم یهودا را که به لحاظ روحانی مرده زنده کنه. اونها به عنوان تنبیه خدا برای گناه بود پرستیشون به بابل بود شدهاند. رفتن اونها در صفهای اسرا به بابل برای اونها بیداری روحانی به دنبال نداشت. روحیه اونها در پایین ترین سطح خودش بود. خدمت هزقیال این بود که برای این مردم ستم و بدون روحیه در اسارت معزه کنه. خدا نمیخواست که قوم یهودا در اون دوره از داشتن یک نبی و مکاشفات نبوتی محروم باشن. پس به حزقیال ماموریت داد که به قوم یهودا در طی تجربه اسارتشون معزه کنه. بله، تمثیلی و روحانی قوم یهودا مانند استخانهای خشک بودند. چالشی که خدا بر سر راه حزقیال نهاد، این بود. از او پرسید، حزقیالا یا فکر می کنی این استخانهای خشک می تونن زنده بشن؟ در کتاب مقدس خدا موکرران، انبیا رو با رویارویی که به اونها میده به چالش می کشه. خدا از الیشامی پرسه که چه می بینی؟ از ارمیا می پرسه که چه می بینی؟ اینجا هم همون مسئله دوباره تکرار میشه. هزقیال، این استخوان‌های خوشک را می‌بینی، فکر می‌کنی اونها بتونن زنده بشن؟ حالا هزقیال نمیگه که بله من ایمان دارم که اونها میتونن زنده بشن. هزقیال میگه خداوند تو تومی تو تومی دونی که اونها زنده میشن یا نمیشن. هزقیال این را به خدا اعلام نمیکنه چون حقیقتاً باور نداشت که اونها بتونن زنده بشن. بعد خدا میگه به این استخوان‌های خشک نبوت کن. خدا به هزقیال رویایی میده، این تجربه‌ایه که هزقیال با خدا داره. حزقیال شروع میکنه به نبوت کردن به استخوان های خشک بعد از اینکه نبوت میکنه میگه صدایی میشنوه و تزلزلی واقع میشه و استخانها ها شروع میکنند به پیوستن به یکدیگر بعد از اینکه اونها به هم متصل میشن اسکلتی به وجود میاد و هزقیال جماعتی از استخوان های خشک رو میبینه که سرپای استادن. اسکلت های خشکی که نه چربی داشتند و نه گوشتی دوباره این مثل بیشتر جماعت ما هست هزقیال به اونها فرمان میده نبوت میکنه و وقتی که نبوت میکنه چربی و گوشت بر اونها قرار میگیره و پوست اسکلت ها رو میپوشونه حالا اونها به شکل لشکر عظیمی میبرپای ایستادند شبانی به اعضای کلیساش گفت که اول اونها به آسمان روبوده خواهند شد چون عهد قدیم میگه اونهایی که در مسیح مردند اول قیام خواهند کرد او گفت اگر اونها در مسیح مردند پیش از همه برخواهند خواست منظورش این بود که اعضای کلیسای من اولین کسانی خواهند بود که از مردگان قیام خواهند کرد. وقتی که هزقیال اون لشکر اسکلت‌هایی رو که با گوشت و پوست و چربی پوشیده شده بودند دید، او هنوز جواب سوال خدا رو دریافت نکرده بود. آیا این استخوان‌ها باز هم میتونن زنده بشن؟ این گروهی که زنده نیستند و هیچ نفسی ندارن. بعد از اون خدا به او معموریت میده و روح نبوت کن. حالا روح همون نفس است. اینجا شما اصلی رو می بینید که در سرتا سر کتاب مقدس وجود داره. جدای از روح القدس تلاش با از بیهوده است. ایسا گفته این کار با نیروی انسانی میسر نیست بلکه توسط خدا امکان پذیره. هر نبی واقعی می دونه که اگر روح بر او نیاد و او رو بلند نکنه و دست قدرت بخشش رو بر او قرار نده و او رو مس نکنه هر تلاشی که او بکنه امکان پذیر نخواهد بود. این چیزی که به طور تمثیلی اینجا آمده بر روح نبوت کن وقتی حزقیال بر روح نبوت میکنه نفس بر این جماعت میاد و اونها تبدیل به ارتش قدرتمندی میشن آیا کاربرد واضح این معزه عظیم حزقیال رو متوجه شدی اولین کاربردش اینه خدا میگه من دوباره شما رو به خانه خواهم آورد پیغامی که میخوام برای این اسرا که ناامید هستند موعظه کنی اینه 70 سال بعد شما به خانه برخواهید گشت فکر نمی‌کنید که خدا می‌تونه این کار رو بکنه؟ خدا می‌تونه این کار رو بکنه. خدا به من رویایی داد. من این وادی های خشک رو دیدم و خدا گفت بر این ها نبوت کن. او گفت نبوت کن و من نبوت کردم. من گفتم نمی‌دونم، بلکه خدا می‌دونه. او گفت نبوت کن و من نبوت کردم. وقتی نبوت کردم، استخوان‌ها به هم متصل شدند و ماهیچه و پوست و پی بر اونها قرار گرفت. بعد وقتی بر روح نبوت کردم و از روح خواستم که موعظه منو واس کنه روح بر اون جماعت قرار گرفت کاربرد اساسی موعظه‌ای که هزقیال مأموریت یافته بکنه اینه من میتونم و شما را از این تجربه اسارت نجات خواهم داد من میتونم و شما را از بابل به خانه هایتان برمیگردونم من میتونم و به اسرائیل فرصت ای خواهم داد توی بررسی ازی عهد قدیم من مکرراً شما رو تشویق کردم که دنبال کاربردهای عملی باشید این مخصوصاً در مورد این پیام‌های نبوتی عهد قدیم بیشتر اهمیت داره این موعظه قصد داره به شنوندگان خود چی بگه بعد از اینکه فهمیدید کاربرد اساسی چیه همیشه این سوال رو بکنید این موعظه چه پیغامی برای من داره و در زندگی من چه تأثیری داره کاربرد اون در زندگی خود من چیه کاربرد عملی که اینجا به اون اشاره شده به چالش کشیدن کسانی که کار خدا رو در این دنیا می‌بینن. کار خدا در دنیای امروزی ما چیه؟ در دوره حزقیال کار خدا بازگرداندن قوم خدا از اسارت بابل بود. کار خدا در دوره ما چیه؟ امروز مسیح زنده و قیام کرده کلیسای خودش رو میسازه. او گفته من کلیسای خودم رو بنا کنم و دروازه‌های جهنم برون استیلا نخواهند یافت. این کاریه که خدا در دوره ما انجام می‌ده. ماسی چطور کلیسای خودش رو میسازه؟ اول او میره و گمشدگان رو پیدا میکنه. او مردم گم شده رو پیدا میکنه و وقتی اون مردم گم رو پیدا کرد، اونها بخشی از کلیسا میشن. اونها شاید وقتی عضوی از کلیسا میشن، حیات روحانی چندانی نداشته باشن. چالش بعدی اینه. آیا میشه این استخوانها زنده بشن؟ این دومین کاربرد از پیام حزقیال هست. ما تصویری از این خدمت عظیم ساختن کلیسا رو در اینجا میبینیم. مؤزه انجیل کلیسا رو بنا میکنه. شما اینجا مثلا شهر دو ای از دنیای گمشده رو میبینید. اون شهر در داستان وادی استخوانهای خشک وجود داره. اونها خیلی زیاد و خیلی خشک بودن. امروز ما بیش از شش میلیارد جمعیت بر روی زمین داریم و اکثر اونها گمشده هستند. از این تعداد جمعیت چند نفر از اونها در مورد عیسی مسیح تلاوتی دارند؟ چند نفر از اونها با عیسی مسیح زنده شدند؟ چند نفر از اونها میدونند که ساکن شدن روح القدس درون انسان یعنی چی؟ تبدیل شدن توسط روح خدا یعنی چی؟ چند نفر از اونها میدونن که پر شدن از روح القدس یعنی چی؟ تعداد بسیار اندکی از اونها. استخوانها زیاد هستند و اونها خیلی خیلی خشک هستند. این چالشیه که کلیساهای امروزی با اون مواجهن. به این دلیل که لازمه ما به این موعظه عظیم حزقیال گوش کنیم. آیا شما جزی از استخوان‌های خشک هستید یا زنده به نظر می‌رسید ولی حیات واقعی ندارید؟ نفس روح خدا رو در زندگیتون ندارید؟ خودتون رو در چه مرحله می می‌بینید؟ خدا می‌خواد به شما به فراوانی حیات بده. امروز نزد او برید. در رویای وادی استخوان‌های خشک شما تصویری از شرایط ضروری موفقیت کار مسیحی رو می‌بینید. و اون دعا و موعظه کلام خداست. هزقیال بارها و بارها میگه دست خدا بر من قرار گرفت و به من معموریت داد روح خدا بر من قرار گرفت تا به من قوت دهد هزقیال میدونه که خدا او رو تعیین کرده که کجا موعظه کنه هزقیال میدونه که روح خداوند در او هست او رو بلند میکنه مس میکنه و او رو در هر چیزی که نیاز داره تا بتونه مسمر ثمر باشه قوت میبخشه در چالش موعظه انجیل و دیدن مردم که تبدیل شدن شما شرحی دو سویه از خدمت کلام خدا برای گمشدگان میبینید. اسلحه روحانی دعا و کلام خدا عملاً گمشدگان را از گناهانشون نجات میده و اونها رو عضوی از کلیسا می‌کنه. شما می‌بینید که ترکیبی از این سلاح روحانی دعا و کلام خدا در این مأموریت به حزقیال داده شده. بر استخوانها نبوت کن، بر روح نبوت کن. شما لازم نیست که یک واعظ باشید تا کلام خدا رو برای دیگران اعلام کنید. برای درمیون گذاشتن کلام خدا با دیگران کافیه که ایمان داشته باشید روح خدا در حالی که شما آن را با دیگران درمیون میذارید کلام خدا را مَس میکنه مثالی هست که میگه بشارت دادن مثل اینه که گدایی به گدای دیگه میگه کجا میتونه نان پیدا کنه اگر شما یکی از اون فقیرانی باشید که به فقیر دیگه میگید کجا میتونه نان پیدا کنه به لحاظ روحانی باید قدرت ترکیب دعا و اعلام کلام خدا رو درک کنید در بابهای نخست کتاب اعمال گفته شده که شاگردان با همدیگر در اجتماعی روحانی زندگی میکردند، هاشون رو تقسیم میکردند و با همدیگر غذا می خوردن اونها یک سوسیالیسم واقعی رو تجربه میکردند. رسولان کار مراقبت از ها رو به عهده میگرفتند و این اونها را از خدمات شبانیشون باز میداشت. پس اونها تصمیم مهم میگرفتند. اونها اولین ناظران رو انتخاب کردند و به اونها گفتند شما این کار را به عهده بگیرید و ما خودمون رو وقف خدمت دعا و کلام خواهیم کرد. وقتی رسولان دعا میکردند و کلام خدا رو موعظه میکردند، خدا به خدمت اونها برکت عظیمی میداد. این همون ترکیب قدرتمندیه که حزقیال در خدمت خودش به کار گرفته. اگر ما فقط کلام خدا رو موعظه کنیم، فقط به مردم اطلاعات میدیم، اما هیچ اتفاقی برای شنوندگان پیش نمیاد. اما اگر موعظه ما اول با دعا شروع بشه، و بعد مععزه کلام اتفاقی میفته پولس رسول به ما میگه که وقتی به شهر قرنتس رفت او فقط حقایقی در مورد عیسی مسیح گفت او گفت عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و به خاطر گناهان ما از مردگان قیام کرد در آتن پولس سعی کرد کلام رو از روی منطق اقلانی اظهار کنه او کلماتی از حکمت جذاب انسانی رو به کار بود او اشعار آتنی و فلسفه های یونانی رو برای اونها بازگو کرد و در آتن هیچ اتفاقی نیفتاد پولس از آتن به قرنتوس سفر کرد و به اونها گفت برادران، وقتی نزد شما اومدم تصمیم گرفتم که غیر از ایسای مسیح و مصلوب شدن او چیزی ندونم او میگه من فقط دو حقیقت مربوط به ایسا رو بیان کردم و بعد جلوه های روح القدس و قدرت خدا رو دیدم وقتی ما به این اعلام ساده انجیل ایمان داشته باشیم، ما هم میتونیم موجزه قرنتوس رو ببینیم ما فهمیدیم که قوم خدا در قرنتوس چه کسانی بودن. بعضی ها وقتی کلام رو شنیدند گفتند حماقته اینها یک مشت چیزهای احمقانه ای هست که حالا شنیدیم هیچ اتفاقی در زندگی اونها نیفتاد اما وقتی مردم به اون اعلام ساده انجیل عیسی مسیح ایمان آوردند اون تبدیل به قدرتی پویا شد که زندگی اونها رو تغییر داد بیش از 600 سال قبل از اینکه پولس رسول انجیل رو در قرنتس موعظه کنه این چیزی بود که حزقیال در ایام اسارت یاد گرفت هزقیال یاد گرفت که وقتی بشارت میدید خدا به شما قدرتی میده که بر استخوانها و به کسانی که به عنوان استخانهای های خشک قلمداد شدن، نبوت کنید وقتی شما این کارو میکنید فکر نمیکنید که چیزی اتفاق بیفته حتی مطمئن نیستید که اون استخانها ها بتونن زنده بشن اما به هر حال نبوت میکنید چون خدا گفته نبوت کنید همینطور بر نفس و بر روح نبوت میکنید شما در تمام مدتی که نبوت میکنید چشمتون به خداست که روحش بیاد و نبوت شما رو محس کنه و تقویت کنه بعد وقتی قدرت او به کار میفته اون استخوان ها زنده میشن این چیزی که ما به صورت تمثیلی در این موعظه بزرگ حزقیال در مورد وادی استخوان های خشک به تصویر کشیدیم همونطور که قبلا اشاره کردیم ما بر بعضی از کاربرد شخصی و عملی معزه حزقیال نبی متمرکز میشیم. ما همینطور کاربرد های تمثیلی فلسفه خدمت معزه بزرگ وادی استخانهای خشک را مورد توجه قرار میدیم علاوه کاربرد هایی که در معزه وادی استخانهای خشک مطرح کردیم شما همینطور تصویری دو سوی از نتایج اطاعت رو در معموریتی بزرگ می بینید. در کلام حزقیال می بینیم که اون میگه رویای خداوند برای تعهد بر من اومد و کلام خداوند برای اجرا بر من اومد وقتی هزقیال از جانب خدا مأموریت یافت او رویای از خداوند داشت که در سباب اول کتاب هزقیال شرط داده شده در اون بابها که در جلسه اول بررسی هزقیال مطرح کردیم شما چیزی رو دارید که میتونید بهش تجربیات آینده هزقیال بگیر بعد از اینکه که ای در معبد داشت از جانب خدا مأموریت گرفت در نتیجه اون تجربه اشعیا معمور شد که برای کار خدا بره. وقتی خدا پرسید که را بفرستم اشعیا گفت خداوندا من آمادم مرا بفرست. بعد از اون بود که اشعیا معمولیت یافت که برای کار خدا بره. ما اونجا عنوان آمدن و رفتن اشعیا رو به این دادیم. بذارید باز هم تاکید کنم. تمامی این انبیاء بزرگ و مردان خدا در عهد قدیم این تجربیات آمدن و رفتن رو داشتن. اونها تجربیاتی داشتند که میتونیم بهشون تجربیات آمدن بگیم و اونهایی که به حضور خدا آمدن یک سری تجربیات دیگری هم داشتند که میتونیم بهشون تجربیات رفتن بگیم. اونهایی که به سوی خدا میاند برای کار خدا اعزام میشن و میرن. دلیلی که چرا رفتن اونها برای کار خدا موثره اینه که آمدن اونها به سوی خدا موثر بوده. بسیاری از مردم امروزه در رفتن برای کار خدا تأثیر نیستند، چون که اونها هرگز به سوی خدا نیمدن، اونها فقط رفته هند. این انبیا و مردان خدا در عهد قدیم تجربیات آمدن به حضور خدا را داشتند که گاهی چهل سال طول کشیده. همونطور که در مورد موسا دیدیم، گاهی هشتاد سال طول کشیده. موسا هشتاد سال تجربه آمدن داشت و چهل سال تجربه رفتن. به این دلیل بود که چهل سال رفتن او اونقدر تأثیرگذار بوده. اون چهل سال رفتن با هشتاد سال آمدن امکان پذیر شده بود. در پایان معزه وادی استخوانهای خشک هزقیال به ما میگه که او رویایی گرفت که متعهد شد. وقتی خدا به هزقیال رویا داد، هزقیال خودش رو وقف رویای خدا کرد و بعد از اون انجام اون رویا بود. در اولین باب از کتاب هزقیال او تجربه ای داشته که این طور شرط داده شده. هزقیال چرخایی دید. اون رویای بزرگ چرخهایی که هزقیال دید تجربه آمدن او بود. باز هم تأکید می کنم در تجربیات روحانی این مردان خدا جزئیات متفاوتن. اما نتایج بسیار مشابه هستند. نتیجه همیشه به رفتن مربوطه. رفتن با خدا و رفتن برای خدا. تجربه هزقیال در باب یک رویایی از خداست. سلیمان گفته جایی که رویا نباشه قوم خدا حلاک میشن در زمان خدمت هزقیال قوم یهودا رویاهای خدا را از دست داده بودند قوم یهودا اورشلیم رو نداشتند کلام خدا رو نداشتند معبد رو نداشتند کاهنین رو نداشتند که اونها را در پرستش رهبری کنه پس رهبر روحانی در اون برهه از زمان لازم بود که رویایی از خدا داشته باشه خدا به چهار روش مختلف رویایی از خودش به داد اول حزقیال بارها و بارها میگه کلام خدا بر من آمد. این در مورد تمام انبیا صحت داره. هزقیال همینطور میگه دست خداوند بر من میبود. حزقیال از این بابت منحصر به فرده چون در بابهای نخست کتابش میگه آسمانها گشوده شدن و من جلال خداوند رو دیدم. حزقیال جلال خداوند رو در رویا دید. تفسیر رویای حزقیال بسیار مشکل هست. او ها و موجودات زندهای رو دید. اونها حیوانات واقعی نبودند اما موجودات زندهای بودند که مثل شیر، گاو نر و انسان و اقاب به نظر می رسیدند. این رویا که در کتاب مکاشفه هم تکرار شده، اساساً رویایی از خداست. این رویایی که مانع حلاکت قوم خدا میشه. اون رویایی که خدا به حزقیال نبی داد تا او بتونه در اون شرایط و زمان سخت خدمت کنه. رویا باید خارقلاده می بود چون زمان زمان معمولی نبود. در آیه 28 باب یک هزقیال میگه که رویا این بود که جلال خداوند بر او ظاهر شد. یادتون باشه وقتی که اون جزئیات رو دستبندی می کنید بپرسید معنی چرخا چیه؟ معنی چشم ها و لبه های چرخا ها چیه؟ معنی این موجودات زنده چیه و هر چیز دیگری در مورد اون موجودات زنده چه معنی داره؟ یادتون باشه این چیزی که هزقیال در مورد جلال خداوند دیده. این کلام هزقیال رو فراموش نکنید. به این ترتیب بود که جلال خداوند بر من ظاهر شد. بسیاری از محققان بر این باورند که این رویا مربوط به علم مطلق خداست. این محققین معتقدند که چشمهای کناری چرخا همه چیزدانی خدا رو نشون میده یا علم مطلق خدا رو. چرخای درون چرخا به این معنیه که میتونند به هر سمتی حرکت کنند. اساس اون رویا علم مطلق خدا بود و هست هزقیال به راستی یکی از انبیای بزرگ بود باز هم بذارید بگم انبیای بزرگ به این دلیل بزرگ بودند که نبوت های اونها تحقق پیدا کرد معزه وادی استخانهای خشک هزقیال در حقیقت معزه بزرگیه هر چیزی که او درباره استخانها نبوت کرد تحقق یافت خدا قوم یهودا رو از اسارت بابل برگردون کاربرد عملی اهمیت اسارت و نجات از اسارت دقیقا اینه اگر یکی از کسانی هستید که آزاد نیستید میتونید از خدا بخواید که شما را از اسارتتون نجات بده اگر شما گناه کردید و تنبیه خدا رو تجربه میکنید اگر به لحاظ تمثیلی در اسارت بابلتون هستید کلام ارمیا رو به یاد بیارید خدا هرگز دست از محبت به ما بر نمی داره تمام پیامهای امیدی را که این انبیاء دوره اسارت دادن به خاطر بیاری. خدا هرگز از محبت به شما دست نکشیده او شما رو تنبیه میکنه اما وقتی شما را از نو ساخت و از شما ظرفی تازه ساخت اون وقت شما رو برمیگردونه این اساس موعظه های حزقیال اشعیا و ارمیا و دیگر انبیاء بزرگ است اونها همه بر واقعیت اسارت تاکید میکنند که تنبیهی از جانب خداست به هر حال همه اونها بازگشت از اون اسارت رو موعظه میکنند بسیاری از انبیا مثل موسی داوود هوشه اشعیا ارمیا و هزقیال همه تمثیل تاک رو به کار میبرند ما موعظه‌ای در مورد تاک در باب پونزده کتاب هزقیال داریم وقتی عیسی در یوحنا باب 15 میگه من تاک حقیقی هستم و شما شاخه های آن این اولین بار نبود که رسولان یهودی این تمثیل رو میشنیدند بسیاری از انبیا در موعظه هاشون این تمثیل رو به کار بردن وقتی از این استعاره صحبت میکنن اساسا دو چیز رو میگن بدون خدا شما نمیتونید کاری بکنید و بدون شما هم خدا کاری نخواهد کرد خدا میخواد که شما مثمر سمر باشید حزقیال موعظه میکنه که اگر در شاخه های شما میوه به عمل نیاد پس قطعا شما به هیچ دردی نمیخورید حزقیال موعظه کرد که اگر تا کی سمر نیاره به هیچ دردی نمیخوره حتی به درد سوزاندن هم نمیخوره نمیتونید از اون میخی تهیه کنید و وسایلی به اون آویزون کنید نمیتونید از اون هیچ استفاده ای کنید یک تاک و شاخه های اون فقط باید میوه بیارن. تمثیل تاک و شاخه های اون یکی از موعظه های بزرگ حزقیال هست. وقتی که کتاب حزقیال رو میخونید با موعظه های او آشنا میشید میفهمید که واقعا موعظه یک نبی بزرگ رو دارید میخونید کتاب هزقیال به لحاظ اینکه در مورد چیزهای آینده صحبت می کنه، چیزهایی که ما از طریق دیگری نمی بدونیم، یک کتاب مکاشفه ای هست. وقتی که کتاب هزقیال رو می از خداوند روح القدس بخواهید که چشم و گوش شما رو باز کنه تا کاربرد عملی موعظه بزرگی که توسط یکی از بزرگترین انبیا شده براتون باز بشه. دوستای خوبم دعای ما اینه که در حالی که با همدیگه کلام خدا کتاب مقدس رو مطالعه می کنیم خودتون رو در کلام خدا پیدا کنید. در حالی که معلم ما کلام خدا رو با ما درمیون میون میذاشت، آیا خودتون رو به عنوان یکی از استخانهای خشک که نیاز به حیات واقعی داره دیدین یا خودتون رو مثل هزقیال با چالش معزه و اعلام کلام خدا و بشارت انجیل به کسایی که به لحاظ روحانی مردن دیدین در هر دو صورت خدا شما رو دوست داره و میخواد به شما حیات واقعی بده حیاتی به فراوانی و اون میخواد که اون رو با دیگران تقسیم کنین تا برنامه بعدی ما امیدواریم خدای قدرتمند فیاض و پر از محبت با شما باشه و شما رو تشویق کنه